فوض بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على نبینا و آله خدمت عزیزان دانشوی خودم حرز سلام دارم روز بخیر خیلی میکنیم انشالله که از نعمت صحت و سلامت برخوردار هستید و انشالله که به لطف الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید ما یک قصیده از متنبی رو خوندیم الان قصیده دوم رو شروع میکنیم و این قصیده قطعا برای شما نسبت به قصیده قبل راحتتر خواهد بود چرا چون با زبان شعری آشنا میشید سطح دانش شما بالاتر اومده پس بنابراین راحت تر میتونید مطلب رو بگیرید و از شعر‌هایشون لذت بلم. این شعر آقای متنبی که نامش رو گذاشته لکل امین ما تعوده برای هر کسی چیزی است که بهش عادت کرده. اینو از بیت خودش گرفته. این رو در مده زیب و دوله گفته. و در یک ایده قربانی اید و لحظه ها که داشته به او تبریک و تهنیت اید رو میگفته این قصیده رو برای او خونده در میدان حلب و هر دو هم سوار بر اسب بودند یعنی صیفالدوله بر اسب نشسته بوده این هم در مقابل او بر اسب در میدان حلب با صدای بلند این قصیده رو که انشاد کرده بوده سروده بوده در روز عید قربان به عنوان تهنیت تبریک بخصیف و و دوله خب پس بنابراین موضوع قصیده رو فهمیدیم خب از یک بیت یکم شروع میکنیم میگه که لکل امرئن من دهری ما تعودا و عادت و سیف دولت ادتعنو فل ادا این لکل امرئن لکل خبر مقدم او ما مبتدا معخر زعنهای الازی اووده یا یو او و تعوید باب تفعیل اوده یعود تعوید یعنی عادت داد عادت داد مثل اینکه که بگم اودت و زیدن از صدقه اودت زیدن از صدقه یعنی من به زید راستگوی رو یاد داد تعود تعود یعنی یاد گرفت اون دو مفعولی عود یاد داد این یه مفعولیه یاد گرفت یعنی عادت کرد میگیم تعود از از صدقه تعود زیدون از صدقه زید هم به و عادت کرد پس یاد گرفتیم دو لغت اوده و, و مفعولیه به معنای یاد دادن تعوده یعنی عادت دادن تعوده یه مفعولیه به معنای عادت کردن در اصطلاحش بیان میگن عادت داد عادت کرد اوده تعوده اون عوضه دو مفعول تعوضه یک مفعول دو تا لغت خوب این لکن لمرئن من دهرهی ما تعودا اون علف اشباه شده یعنی تعوضه بوده اشباه شده شده تعودا مال شعر. یعنی بوده لکل لمرئن من دهرهی ما تعوضه عاد سلشم افتاده یعنی ما تعوضه او. چون آرد سله اگه زمین مفغول منصوب باشه هست میشه جایز هست حالا ترجمه کنیم دهرم که روزگار دیگه حالا دید. برای هر شخصی هر انسانی از روزگار خودش چیزی است که عادت نموده به آن یعنی من از روزگار چیزی به هم میرسه که بهش عادت کردم تو از روزگار چیزی بهش میرسه که بهش عادت کرد روزگار یعنی آدم رو عادت به چیزی میده ما از روزگار همون رو به دست میاریم که بهش عادت کرد خب این اپ این قاعده روانشناسی عنوان کرد میگه روزگار انسان رو عادت میده هر کسی از روزگار خودش چیزی که به اون عادت کرده بهش میرسه و عادت و سیف الدولته حالا سیف الدوله یکی از همین مردمان است. و عادت سیف الدوله ادتعن و فل تعن مستره تعن یعنی نیزه زد یعنی نیزه زدنش یعنی تعن هو و عادت سیف و دوله نیزه زدنهای اوست فل ادا ادا جمع ادوه یعنی دشمن فل ادا یعنی فی ادا در دشمنانش روزگار به سیف چی یاد داده؟ اینکه دشمنان رو با نیزه بکوبد پس سیف هم عادتش این شده که دشمنان را با نیزه بکوبد عادتی که یاد گرفته از روزگار یعنی شجاعت عادت و صیفت دولت عادت و مفتداست است از خبرش فل ادا هم متعلق به آن آن یعنی نیزه زدن فل ادا یعنی در دشمنان منظور یعنی دشمنان خودش به اصطلاح میگن الفلام عوض از مضاف الیه یعنی فی ادا در دشمنانش اون از یعنی تعنو نیزه زدنش در دشمنان، در صفوف دشمنان. پس هر کسی از روزگار آنچرا که عادت کرده است به او میرسد و عادت سیف هم نیزه زدن او در صفوف دشمنان است. خب شجاعت سیف الدین در به نحو عالی بیان کرد. و ان و ان یکزه ول ارجا انهو به زدهی و یمسی به ما تنوی عادیه اسعدا لغاتشو معنا کنی میبینید چه راحته اکزب و یکزب و اکزاب یعنی دروغ کسی رو آشکار کردن دروغ یه نفر رو آشکار کردن میگی اکذب تو یعنی کذبش رو آشکار کرد الان اینجا اونی که دروغش رو ظاهر میکنه اون چیزی که دروغ بودنش رو معلوم میکنه اون الارجافه که مفعوله انیوکزبه ان است ان انیوکزبه و زمیر داخلش فایلش میخوره به سیف و دوله مفعولشه یعنی ارجاف رو دروغ بودنش رو ظاهر میکنه ارجاف چیه؟ مستر دیگه ارجاف. خبرهای بی اساس و شایعه و نادرست رو پخش کردن میگن ارجاف ارجف و, و یعنی شایعه پراکنی کرد خبرهای بی اساس و نادرست و دروغ رو پخش کردن عراجیف از همین کلمه است عراجیف به چی میدن؟ به شایعات چیزهایی چیزهای بی اساس فا. تنوی نوی نوی نیتن یعنی قصد کرد نوا نوی یعنی قصد کرد امسای ام که که میدونید دیگه افعال ناوزه است بسید امسای یعنی ساره از که میدونید دیگه سعادتمند اعادیرم میدونید یعنی دشمنان جمع اعدا اعدا جمع اعدا یعنی دشمن. زد هم که میدونید فارسی هم داریم زد یعنی مقابل خب میگه لغات رو گفتم حالا این وعنی یک زبه عطف به جای عطعن است تو بیت قبل یعنی عادت سیف و دوله یکی نیزه زدن به دشمنان است این یک و همچنین ان یک زبه مستر دیگه تحبیل به مستر میره عطف شد به جای عطعن. و همچنین عادت این آقای سریف است که دروغ پراکنی و شایع پراکنی در خودش رو به واسطه زد آن به واسطه زد اون برملا میکنه آشکار میکن نگاه کنید و علیوک و اینکه آشکار میسازد دروغ بودن رو سیف الدوله الارجاف یعنی ارجاف دشمنان الارجاف یعنی دروغویی و شایعات دشمنان رو انها از خودش دروغ بودن شایعات دشمنان از او رو دروغ بودنشو آشکار میکنه با چی آشکار میکنه میره مثلا بلندگو میگیره دستش آشکار میکنه مثلا یه نفر در مورد من دروغ گفته من میرم واه میستم جواب میدم نه نه این به ضدهی آشکار میکنه دروغ بودن رو با ضد اون ارجاف مثلا اونها شایع کردند که سیف و دوله آدم بخیلیه این با ضدش که کرم میکنه دروغ اونها رو آشکار میکنا اونها شایعه کردند ترسوه ترسو جنگآور نیست این با یورش کردن و حمله کردن شایعه اونها رو بربلا میسازند پس و آشکار میسازد دروغ بودن شایعات اونها در مورد خودش رو با ضد اون شایعات یعنی با عمل فهمیدید و یومسی این و یومسی از به جای اون یکسز بعد بعد میخندیم و ولی به خاطر شعر نصفش تقلیری میشه و یومسی اسعده و میگردد سعادتمند اسعده. بما؟ این به ما متعلق و ازده به خاطر آنچه که تنوی عادی قصد کردند آن را دشمنانش دشمنانش قصد کردند با این شایعات این از بین ببرند ها؟ عدو شد سبب خیر اگر خدا خواهد این با ضد اون شایعات عمل کردن سعادتمند میشه یعنی پیروز میشه دشمنان سرکوب سرکود میکنه دشمنان چی فکر میکردن؟ چی شد؟ و یومسی و میگردد سیف و دوله اصعده خبر یومسیست سعادتمند موفق اما موفقیتش به واسطه چیه؟ به واسطه آنچه که تنوی عادی یعنی تنویه عاید سلو افتاده عادی به واسطه آنچه که نیت کردن اون رو دشمنانش دشمنانش با این شایعات نیت کرده بودند اورو از بین ببرند خوردش کنند ضعیف نشونش بدند اما عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد اون با عمل به ضد این این شایعات رو از دین میبره و سعادت منگ میشه با آنچه که دشمنان قصد او رو کرده بودند هآ و با آنچه دشمنانش در سر دارند خودش رو به سعادت میرسونه سعادتمند بشه به واسطه اون راحت بود چیز نداشت پس تو این گفت چی؟ گفت دشمنان با این شایعات قصدشون اینه که سیف و رو زمین میزنند، ولی سیف دوله با عمل کردن به ضد اون شایعات سعادتمند میشه با عمل کردن به ضد اون شایعات دروغ اونها رو برقلا میسرسه و ان یکز بله ارجاف ال ارجاف یعنی ارجاف ال اعدا دروغ پراکنی دشمنان رو الهو از خودش الهو یعنی از خود سیفوتو آشکار میسازد دروغ پراکنی دشمنان رو، نسبت به سیف و دوله آشکار میسازد با چی به ضر دهی با ضد اون ارجاف و یومسی و می گردد اسعد سعادتمند به ما به آنچه که تنوی عادی به آنچه که تنوی تقصد و قصد میکنند، دشمنانش یعنی با اون که اونها قصد کردن به سبب قصد اونها این سعادتمند میشه اگر اونها شایع نکرده بودند که این سیف الدوله دوله ترسوه اون حمله نمیکرد و کشور گشایی کنه اونها شایع کردند این ترسوه اینم لشکر کشید و پیروزمند سرزمین اونها رو به دست آورد و اونها رو ازیر خودش کرد به واسطه قصد اونها این شخص سعادتمند شد خب این هم بیت دو پس و ان یکزبه شد به جای اتن و یمسی هم شد به جای یکزبه و یمسیه خونده نشد چون وزن شعر به هم میخورد. شعرش از نظر موسیقی وزنی بشنگ پس میگه یکی از اسباب با قول خودمون موفقیت سیف و دوله دشمنانشند آه دشمنان اونو تحریک میکنند با یک شده شایعاتی که میدازند این تحریک باعث میشه که او جوابش جواب عملیه عمل میکنه دروغ اونها رو ظاهر میکنه و خودش هم به سعادت میرسه چه جوری به سعادت میرسه؟ کشور اونها رو فقط میکنه؟ قناه رو به دست میاره و دشمنانش رو سرکوب. راحت؟ بعدی رو ببین؟ همین مطلبه و رب به زرهو ذر زر و هو ذره نفسه هو و هادن اهدا و ماهدا اگر نگاه کنید چند لغته لغت با همدیگه اشتقاق دارن جناس دارن اونها رو معنا کنیم شعر از نظر معنا راحته روبه که میتونید یعنی چه بسیار چه بسیار مریدن مرید اراده یورید و ارادتن اسم فایلش مرید یعنی اراده کننده چه بسیار اراده کننده ای اراده ای چی کرده زرهو زرهو مفعول مرید زرر زدن به او را هو میخوره به سیفت دوله یعنی اینطوره بوده رب و رجلن موریدن زرهو چه بسا کسی اراده کند زرر زدن به سیف و دوله را زر نفسهو زر این مورید بگید نفسهو خودش رو زرر زده است به خودش میگه چه بسا کسی تو کلش بیاد اراده کنه که به سیف و دوله بزنه اما زر رو نفسد او خودش رو زر ارزد چه بسا کسی قصد دارد به سیف و حمله کند یا سیف و دوله رو آسیبی برساند اما بداند که به خودش سر بزن گور خودش رو زر نفسه و حادن حادن اتوه جای موریدنه یعنی و هادن بحادن هدایهدی هدایتن یعنی هدایت کن هدایت شما تو پارسی مسترش استفاده حادی رو استفاده میکنیم هدایت کننده و هادن الیه الجیش الجیشه یعنی جیشه و چه وسا هدایت کننده ای به سوی سیف و دوله لشکرش رو؟ یعنی چه و کسی به سوی سیف و دوله لشکر بکشه؟ هدایت کنه. لشکرش. رو. اهدا و ما هدا اهدا یهدی اهداعا ما اهدا رو تو فارسی استفاده میکنیم میگه فلان چیز اهدا کرد یعنی هدیه کرد. این اهدام مفعولش یعنی اهدا جیشهو مفعولش افتاده به این جیش. اون حدا از همه حادنه هدا یهدی هدایت کردن به میشه که میگه میگه و چه بسا شخصی هدایت کند به سوی سیف و دوله لشگرش را این اهدا هدیه میکند لشکرش را به سیف و, دوله و ما هدا و لشکر کشی نمیتونه بکنه و هدایت لشکر به سوی سیف الدوله این در واقع هدایت نمیکنه لشکرش را به سوی سیف دوله بلکه دارد لشکرش رو هدیه میکنه. این لشکر انداخته جلو داره میاره دنبال خودش. درسته که ظاهرش این لشکر کشی کرده میخواد بیاد سیف رو از بین ببره، ولی مثل اینه که کسی؟ یک لشکری رو انداخته و داره میاره این لشکر هدیه کنه به سیفوت او هدیه می کند نشکرش را به سیفوت دوله و هیچ وقت هدایت لشکر به سوی او نمی کند. دوله. یعنی اهداجه جیشهو و ما هدااج شه. او هدیه می کند لشگر خود را به سیفوت دوله و هرگز لشکر به سوی او نمیکشد. کشن کرده اون بیت قبل پس میگه چی؟ میگه کسی تو ذهنش اراده میکنه چه بسا؟ زرر به سیفت بزنه در واقع زرر به خودش زده عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد و عمل میکنه به اون چیزی که اراده کرده لشکر میکشه به سوی سایفو دوله. در واقع لشکرش رو هدیه میکنه به سایفو دوله. و هیچ وقت لشکر به سوی سایفو دوله نمیکشه. هدیه میکنه یعنی, چی؟ یعنی لشکر میاد جلوی سایفو دوله سیفت دوله لشکر کو. میزنه از بین میبره، اسیر میگیره، قنیمت میگیره، اون سر زمین میکنه. پس بنابراین هدیه کرده است به دوله، لشکر خودش رو. و هرگز نتوانسته از لشکر به سوی صیف بکشد. بکشه اون مرید لفظن مجرور به ربه است چون ربه متعلق نمیخواه لفظن مجروره به ربه است محلا مرفوع مبتداست اون زر و نفسهو جمله خبرشه این وهادن اتو جای مریده اینم یعنی رب هادن این هم مبتداست محلن مرفوعه اون اهدا و ماهدا خبرش دیگه راحت میتونید هم لغت رو بفهمید هم مهما کنید رب نکره موسوفه در میاد یعنی مثلا روب بر رجل سالح اینجا بوده روب بر رجل مرید زر زره و. و هادن، یعنی و رب رجل هادن حادن الیهه یعنی به سوی سیف و دوله الجیشن احدا این شخص یعنی احدا هدیه آورده برای سیف و دوله هدیه لشکرش بود و ما هدا و هرگست هدایت نکرده لشکر کشی نکرده آه یعنی و ما هدا خب دیدید سه چهار لغت رو که معنا میکنید ترکیب عبارت رو میفهمی شعر کاملا واضح میشه مشخص میشه چون سی آل متنبی پروردگار شعره و شعر رو واقعا خلق میکنه نگاه کنید بهیتبر و مستکبر لم یعرف الله ساعت لع او فی هو فیکف سیهی فتشهدا فتشهدا یعنی فتشهدا اشباح شده شده تشهدا به خاطر تشهدا یعنی شهادتین گفت مسلمان شد شهادتین یعنی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اینو یه شهادت این که تو نمازم میگی. کفم که یعنی دست میدونید کف دست مستکبرم که میدونید دیگه. یعنی کسی که خودشو کبریا و عظمت میبینه یعنی کسی که خودشو خیلی گنده تر از این چیزی که هست میبینه کبیر نمایی. نگاه کنید و مستکبرن یعنی رب و مستکبرن مثل اون وحاده یعنی رب و مستکبرن یعنی چه وسا انسانی مستکبر کبیر نمایی که از دماغ فیل افتاده آه و مستک برین لم یعرف الله ساعتن یه ساعتن یعنی لحظتن ساعتی که افتحانش توی عربی یعنی آن دوران هم داریم ازا جا عجلهم هم لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون یه اگه عجلشون برسه لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون یعنی یک آن پس و پیش نمیشه ممیره. و مستک و چه بسا شخص مستکبری لم یعرف الله ساعتن که صفتش اینه لم یعرف الله ساعتن یک آن هم خدا رو نشناد رعا سیفهو مستکبرن لفظا مجرور محلن محفو مبتدا مثل اون موریت مثل حادم یعنی چه بسا شخص مستکبری که یک آن هم با خدا ارتباط نداشت. این رعا صیفهو خبره مثل ذر نفسه مثل و نفسهو مثل عهدا و ماهدا چه بسا شخص مستکبری که یک بار هم بگو. خدا رو قبول نداشته یک لحظه رأع سیفه هو. شمشیر سیف دلار می بینه. فی کفهی. این فی کفهی حال است از برای سیف. شمشیر سیف دلار می بینه. در حالی که تو دست سیف دلار نه شمشیر رو زمین باشه یا شمشیر سیف دلار رو تو دستش که می بینه. یعنی بالای سر خودش می بینه. رعا سیفهو سیفه هو. فی کفهی سیفهون میخوره به سیفه دوله فیکفهی میخوره به سیفه دوله رعا فعالش میخوره به مستقبل میبینه این شخص مستکبر شمشیر سیفالدوله دوله را در حالی که تو دستشه چی میشه؟ بگید فتشهد هده فاق برده میدونید که فاعت میکنه یعنی بدون محلن رعا میبینه اینو تو دستش فتشهد هده و زود شهادت این بگه. مسلمان میشه آه. زود شهادت این میگه مسلمان میشه سیف و دوله هم بگید آدم که مسلمان نمیکشه جونا خودشو نجات میده با این بیت یه مقدار متنبی داره چیکار میکنه؟ داره میگه که متنبی اینطور میگه که سیف و دوله در واقع جنگش جنگ دینیه مذهبیه برای خاطر اینکه کفرت به این کفر رو ببره کشور کفر رو سرجاش بشونه ها اونها رو حمله میکنه و باهاشون مبارزه میکنه یعنی در واقع جهاد داره میکنه از نظر ایشون ها میگه این شخص کافر مستکبر که یک آن خداشناس نبوده شمشیر سیفالدوله رو میبینه در حالی که تو دست سیفالدوله است پس سریع شهادت این به زبان جاری میکنه و مسلمان میشه و سیفت هم دیگه با مسلمان کاری نداری فتشه هده درست شو. پس این بیت داره در واقع شجاعت سیفت رو میگه و میگه شجاعتش در خدمت به قول خودمون امر معنوی جهاد هستش و به این دلیله و مستک برن لم یعرف الله یعنی و رجلن مستک یعنی رب مستک و رجلن مستک برن لم یعرف الله ساعتا رعا سیفهو فی کفهی فی کفهی حال است از ورسه میبیند جا رو مجرور بعد از معرفم شاهد میبیند شمشیر سیف الدوله را در حالی که این شمشیر تو دست سیف الدوله است و تشهده پس سریع شهادت این میگه برای اینکه جون خودشون نجات بده درست شد؟ این هم گفته فتشه نگفته نه گفته و فا یعنی عطف بدون محلت مثل اینکه میگیم دخل از زیدان فسلمه دخل از زیدون فسلمه یعنی چی؟ یعنی زید رسید به محض اینکه رسید سلام کرد بهش میگم برای ترتیب بلا مهلتن پشت سر هم میاد سلام پشت وارد شدن در فسلم بلا مهلتن بدون هیچ گونه محلتن. حالا نگاه کن بیت بعدی. حول بحر ازاکان ساکنا قول بهرو قصفیه ازاکان ساکنا قاس یقوسو یعنی فرو رفت فرو رفتن تو آب اصلا قواس از این کلمه است یعنی کسی که زیاد عادتش اینه که تو آب فرو قاس قاص و, و فیره میشه چی؟ قس مثل قان و یقول و اونه. اجور خوب البحر و قس فیه بحرم که میدونید دریا خوب که کیه سیف دوله هوه البهر این تشبیح ولیغ یعنی کل کلبهر دیگه فلجود. او مثل دریاست در کرم ما میگیم دریایی کرم میگه او دریاست یعنی منظورش نیست که او دریاست آب توشه بلکه منظورش اینه که او مثل دریاست در جود و کرم اصفیه اصفیه یعنی چی؟ فرو برو تو این دریا نفوذ کن در این دریا منظور یعنی چی یعنی صیفالدوله دریای کرمه بش نزدیک شو برو سلام کن برو جلو اظهار ارادت کن برو به او بچسب اصفیه ا با یادت باشه اا کان ساکنا این سیف و دوله ساکنند این سیف و که دریاست ساکن باشه ساکن یعنی در حال آرامش در حال غیر غضب سر کهیف فیلم مثل دریاست دریا کهی میرن توش؟ سید میکنن موقعی که دریا آرامه طوفانی نیست نواج بگید نیست قصفیه علت در این علت در متعلق است به قص. فرو برو تو این دریا برای به دست آوردن در برای در و گوهر آه قبواس میره پایین رو میگیره از توی اونها در رو گوهر در میاره دیگه اما قبواس کی میره تو دریا؟ موقعی که دریا ساکن علت در به دنبال دور. میگه نگاه بهر، او دریاست قصفیه علت دور. برو تو این دریا به دنبال دور و گوهر ازا کان ساکنا زمانی که این دریا بگید ساکن باشد یعنی هی لکان ساکنه زمانی که این دریا ساکنه بود اما وحذرهو این وحذرهو هایت به جای قصد کن از این دریا نزدیکش نشد ازاکان مز بداد زبد یعنی کف زمانی که کف میکنه کی دریا کف میکنه دیدید؟ موقعی که مرواج خروشانه موجها ها میاد میخوره به ساحل کف میباید بگید موقعی که اون دریا خروشان است مواج است کفالود است آ درست شد؟ زبد یعنی کف موقعی که اون دریا کف میکند به پرهیز از او مبادا به او بگید نزدیک بشید مبادا به او بگید نزدیک بشید پس میگه سیف و سیفالدوله عین دریاست سر به سرش نذریو پسوانی نکنی موقعی که آروم درست حسابیه ها دوستی کن باش برو جلو همه چی داری اگه سر به سرش گذاشتی و اگه عصبانی شد میشه مثل دریای خروش ها اون موقع باید پاتو بذاری دری وگرنه تو را از بین خواهد برد. دیگه چیزی برای تو باقی نخواهد گذاشت. خوب تشبیه قشنگی کرد. او رو تشبیه کرد به دریا، گفت مثل دریا هم بگید. آرام است اما برای دوستان و برای اون کسانی که سر به سرش و مثل دریا خروشان است و از بین میبره اگر سر به سرش درست سر دلست شد خب تمام بریم سر بیت بعدی فعنی گشنه فانی فا رأيت البحر يعصر بالفتا و ها یا يعت الفتا متعمدا ببینید تو بیت قبل متنبی رو تشبیه کرد به چی به دریا و متنبی مثل دریاست وقتی آروم و سر حاله در رو گوهر برو از کفش جمع کن و بیا وقتی که ناراحت و عصبانی است مثل دریای خروشانه بری نابود میشی دیدید دیگه کسانی که در زمان دریا که طوفانیه میرن دیگه بر نمیدن تشبیه که بده میگه ولی یه فرق است بین متنبی و دریا ما گفتیم متنبی مثل دریاست آرامش دارد و خروش در آرامش چیز گیرت میاد در خروش نابود میشی گفتیم مثل دریاست ولی یه فرقی بارد دریا اگه آروم باشه به آدم چیزی بده یا خروشان باشه و آدم رو از بین ببره هر دوش بدون قصده چون دریا قصد نداره وقتی آروم میری بهت سرویس میده میری پایین در رو باحت قواسی میکنه به دست خروشان هم هست در هم می غرقت میکنه این هردوش دریا قصد نداره ذاتش اینه چون بیعقله بی طبیعت، طبیعته اما میگه سیف و دوله این کار رو بر اساس عقل و قصد و عمد میکنه کنید سیف و دوله وقتی تو میری به هدیه چیزی میده با قصد و عمد و با دست خودش میده و وقتی که خروشانه میری نابود میشی اونم با قصد و داشت پس بین سیف و دوله درسته تشبیهش کردیم به دریا با دریا فرق دارد او بر اساس طبیعتش این کار میکنه این بر اساس بگید قصد و نیتش کل بیتینه فا اینی رعیت البحره فرنی یعنی پس بنابراین من دیدم دریا را من دریا را دیدم یعصر و بلفتا اثر یعنی لغزان یعنی قرق کرد بالفتا جوان رو یعنی موقعی که خروشانه جوان رو قرق میکنه ما قصد نداره یعصر و غرق میکنه بدون قصد همینطور حالا غرقشو داره میگه. بازم میتونست بگه ف عین نیرع درست شد یا اتل به جوان عطا میکنه در و گوهر اما هر دوش بدون قسته. طبیعتش اینه. موقعی که باد نمیاد آرومه میری قواسی میکنی در و گوهر میگی. موقعی که باد میاد و طوفانی و مواجه میری غرق میشی. یاثرو بنفتا اما و لذی حاذای یعنی سیف دوله و لذی اشاره کرده به سر رو اسن نشسته بودوشون و این آقای سیف دوله کسی است که یعتل ها میاد سراغ جوان چه با کرم چه با زمین زدن ها یعتل بدن در حالی که متعمد با قصد میاد با قصد یعط الفتا اتاق و یعنی رفت سراغش کشتش خب یعط سراب الفتا یعنی زمین میزنه اون فتا رو جوان رو کسی که سراغش بره درست شد میگه من دیدم دریا را که زمین میزند انسان رو بدون قصد یعصور میلغزون متعمد نیست این طبیعته اما این سیف و دوله کسیه که یعط الفتا سراغ شخص میره متعمدن باقه است. پس درست ما تشبیهش کردیم به دریا ولی فرق است بین سیف و دوله و دریا سیف و دوله میدهد با عمد میدهد میخروشد و میکوبد با عمد میخروشد و میکوبد دریا چه درد و گوهر بدهد و چه مواج باشد و غرق کند هر دو بر اساس عمد و قصد نیست بلکه ذات و طبیعتش این بیجان است یعنی کرم دریا و قرد کردن دریا هر دوتا بر اساس فست و نیت و عقل نیست ذات طبیعتش سیف و هم کرمش و هم در همکوبیدنش هر دو بر اساس عمد است قصد است هم شجاعتش هم کرمش بر اساس فست است فَإِنِّي رَعَيْتُ الْبَهْرَ این یعصر و حال است از برای البهر من میبینم دریا را دیدم دریا را در حالی که زمین میزنه کسی رو با مواج بودنش رو اینها عبی میبره اما بدون قصد و هازل لذیحازا یعنی این سیفت کسی است که یعط الفتاه میکوبت جوان رو از دین میبرد جوان رو اما متعمدان واقع است این متعمدنه اون تعمدی ندارد فقط از یه جهت به هم شبیهند اونم از این جهت که وقتی آرومند میشه سراغشون رفت و وقتی که خروشانند دیگه سراغ رفتن ندارد خوب اینم زیبا بود بعدی رو نگاه کن، ازallo ملوك الارز خواشاتن له، تفرغه حلقا و تلقاه و جدا زل یا که میدونید دیگه اینو بلدید دید از افعال ناقص است اون ملو کل عرض مضاف مضاف اسمشه خاشتن خبرش لهو هم متعلق به خاشت درست شد تزل و ملو کل خاشعت لهو تزلم مثل یومسی به معنای تصیرم میگردند میشوند ملوک العرز خاشعت له له برای صیف داد درست پادشاهان زمین پادشاهان دنیا در برابر او خاشه و خازه می شود مثل همه گردن گلفتا و بادشاهان آلم در برابر او خاشه و خازند نگاه کنید تزل و و کل اعل میگه پادشاهان عالم همه در مقابل او خواشند همه در مقابل او خوازند تفارقهو هلکا فارقه و فارق یعنی جدا شد جدا می شود پادشاهان عالم از او در حالی که هلکا حلکا یعنی حلاک شرندگانند نابود شرندگان و تلقاهو و رو در روی او واقع می شوند در حالی که سجدش میکنند اون حلکا جمع حالک یعنی حالکی بروش شو اون حلکا حال است از برای فائل تو فارغوهو که به کنی میخوره هیئت هیتو شد حال است از برای فائل تو, تو فارق فارغ و فارغوهو یعنی ازش جدا شد او حال است سجدن جمع ساجد حال است از برای فایل تلقا چی میگه؟ میگه همه پادشاه عالم در مقابل او خاشند چرا؟ چرا؟ چون تفارق و حلکه چون جدا میشوند از او نابودند زیر بیلیتش نرند نابودند و تلقاه و با او ملاقات کنند و زیر بیلیتش برند سجده همشون در مقابلش ساجده یعنی اگر پادشاهی از سیف و دولت جداک بشه و بعد هم پررویی کنه و مخالفت بکنه هلاک میشه و اگر پادشاهی هم از در صلح در بیاد و با او بسازه و خضوع و خشوع کنه درست شد سالم میمونه؟ چون سیف و دوله گنده همه اینهاست کسی در مقابل سیف و دوله نمیتونه ارزندان کنیم توفارق و یه حلکا کی میخوره؟ سیف و دوله فائل توفارق به کی میخوره؟ به ملوک چون جمعه مکسره معامله مفرد محلس شده هی هست توفارق جدا میشوند پادشاهان از او در حالی که هلاک شدند جدا میشن یعنی چی یعنی با او نمیسازند و تلقاه و با او رو در رو میشن ملاقات میکنند ها یعنی چی یعنی از نظر دوستی باش وارد میشن سجده همهشون سجده کنند بر سیفالدین یعنی سیفت دوله کسیه که آدمیه که نکشه اگه کسی بخواد باش نسازه کارش تمومه بسازه سجده کنه بر سیفت دوله خضوع کنه اینجا بر سجده یعنی خضوع, خضوع کنه سیفت قبول کنه بسم اسم میسازه هیچ مشکلی هم برست پس مسره دوم داره مسره اولو توضیح میده دیگه تو مصره اول داره میگه چی؟ همه پادشاهان در مقابل او خاشند ارزندام نمی کنند تو مصره دوم میگه چون کسی که جدا میشه از سیف و در حالی که نابود شده و کسی هم که با او بسازه با او رفت آمد کنه تلقاه و لقیه یلقاه ملاقات کرد کسی که با او به و رفت آمد داشته باشه سجدا در حال سجده برونست یعنی زیر بلیط اوست تمام شد تفارقه حلقا و تلقاه سجدا سجد جمعه ساجده حلکه مثل عدشاه آ مثل سکلا صفته یعنی هلاک شده یعنی حالکتن یعنی هلاک است نابود است جدا شونده جدا میشود شود ملوک از او در حالی که هلاک شمنده است و ملاقات میکنه با او منظور یعنی این که از او جدا نمیشه به او میپیوندد آ در حالی که بر دوله سجده می و توخی هی له المال سوار مولانا و یقتل ما تهوی از تبسم مول جداب باز داره همون مطلب بالا رو میگه قشنگه میگه پس گفت اگه کسی جلو سیف الدوله پر روی کنه و وایسه کارش ساخته است اگر هم با سیف الدوله بسازه و در مقابل سیف الدوله سجده کنه توازه کنه سیف الدوله او رو نگه میداره و با او میسازه همه پادشاهانم هم میگه همه گردنکشان عالم هم, هم همین طورن در مقابل سیف حالا میگه چی؟ و توهی لهو المال از سوار مول قنا و یق ما یوهی اتبست مول ادا و یق تولو ما تهیی تو بعضی نصفش داره یوهی اتبست سموول ادا نگاه کنی پشنگ گفته ها میگه سیفا دوله جنجینه هاست به این تولوانش پره پره پر. اصابی و توهی احیایوهی یعنی چی؟ احیا کرد لهو برای سیف و دوله احیا میکنه برای سیف و دوله المال تمام مال ها رو تمام ثروت ها رو احیا میکنه برای سیف و دوله مال و ثروت رو چی احیا میکنه؟ از سوارم و الگنا یا از و شده فایل توییست سوارم جمع سارمه یعنی شمشیر قنا جمع گنات تی دو نخته تی گرد جمع گنات یعنی نیزه پس ترجمه چی میشه ها سوارم یعنی شمشیرها زنا جمع زنان یعنی نیزه‌ها شمشیرها و نیزه ها تمام مال و ها را برای او زنده می‌سازند یعنی مال و چه از کجا به دست آورده از اینکه یک پادشاهی پردوری کرده رفته زده بود همه چیز رو برداشته آورده پس شمشیرها و نیزه ها تمام مال و ثروت رو برای او زنده می کنند و می آورند بعد این ثروت و مال و اینها رو میگیره توی انبار خودش نگه می دارهش کار نمی میگه نه و طلو ما توبیه و میکشد یعنی از بین می بره دیگه چون مال و ثروتی که نمی کشن. اینجا منظور گفته یقتلو مقاید داره به هماسی صحبت میکنه از قتل گفته استعاره است یقتلو یعنی نابود میکنه از ده میبره و یقتلو ما توهیی و نابود میکنه آنچلا که نیزه ها و شمشیرها جمع کردن یعنی همون سروت اون ثروت بی نهایتی که شمشیر و نیزه جمع کردن اونو از بین بره، چی از بین میبره؟ از توسم و الجدا. یه تبسمی که سیفت دوله میکنه یه لبخندی که میزنه و الجدا جدا یعنی عطا و کرم بخشش میگن کریم آقا یه موقع یه کسی کریم نیست زلشون میکنه پایین اخمشو میکنه تو هم و رولوندم میکنه با آدم میده میگه مرد شد یافه شد بره بره بره بره این چیز که اما میگهن کریم با روی باز لب خندان انگار داره کیف میکنه لذت میبره عطا میکنه این کریمه درست میگه با لب ملیحانه ملیهانه و اظهار سرور و بخششی که میکنه همه این مالهایی رو که جمع کرده همه رو از بین میبره. پس شمشیرها و نیزه ها تمام مال و ثروت رو برای او زنده میکنه همه رو جمع میکنه. ولی آنچه رو که اونها جمع کردند و احیا کردند با لبخند و بخشش همش رو از بین میبره و فدا میکنه. قشنگ گفت. بس سیف و دوله با شجاعت مال آدم هایی که پررویی کنند رو به دست میاره و خزانه هاش پره اما با کسانی که با او میسازند با لبخند و مهربانی همه رو عطا خب پس مال از دستی که در میاره از اونایی که توفاره و به کیا میده و اونهایی که تلگاه و سجدا میان جلوش توازن میکنن اینم از سر لطف و کرم با لب خندان به اونها میده شد قشنگ بود الان داره هم کرم سیف و رو میگه و هم داره بگه شجاعت اون رو بیان میکنه مم. و بسیار زیبا هم خب بیت بعدی رو ببین. بشنگی است زکی جون تزنیه زکی جون تزنیه تلیعت و عینهی یرا قلبهو فی یومهی ترا قدا بشنگی اگر نگاه کنید میدین این بیت ها سخت نیست و وقتی هم آدم می خیلی خیلی راحت هل. زکیان خبر مبتدای محضوفه یعنی هوه زکیو یعنی سیف و است. زکیست زکیگه خودتون می دونید دیگه یعنی با ذکاوت یعنی زیرک تیزخوش یعنی سیف و آدم تیزهوش و زیرکی زکید. تزنی تزنن بوده اون نون آخر قلب به یار شده شده تزنی تزنن بوده از زن گمان تزنی یعنی گمان بردن تخمین زدن خب یعنی تزنن اون افرادی رو میگن که جلوی لشکر میرن ا آدمای اطلاعاتی که جلوی لشکر میرن که لشکر شبیخون نخوره روش میگن پیشقراولان ولاند تلیعه پیشقراول پیش, پیش, قراول. پیش قراول. یا بهشون میگن طلایه‌داران پیشتازان تلیعه دیگه فکر میکنم فهمیدید حالا نگاه کن میگه سیف و آدم باهوشیه خیلی باهوشه خیلی تیزهوشه تزنیه تلیعت تو عینی گمانی که میبره پیش قراول چشمشه خیلی حرفها گمان او پیش قراول چش میشه یعنی چی یعنی گمان که ببره ها این گمانش همونیه که چشمشونو اونو خواهد دید مثل لشگری که طلایه‌دارانش پیش قراولانش رفتن یه چیزی رو دیدن میان میگن به لشکر بعد لشکر میره همونو میبینه دیگه میگه قبل از اینکه چشمش ببینه گمانش میفهمه فهمیدی خیلی قشنگه تیزبینه باهوش دوله گمانش دیده دیدهی اوست گمانش هرچی رو گمان کرده چشمش بعدا اونو میبینه بعد توضیح میده اینو همینو میگه میگه یرا قلب و هور قلب یعنی اینجا دلش دلش میبینه ذهنش میبینه امروز ما ترا قدام اون چرا که فردا قراره این با چشش ببینه. امروز به دلش میافته همونی رو که فردا چشش میبینه یعنی گمانش امروز یه چیزی میشه هیچ موقع تو گمانش میگه اشتباه نمیکنه؟ گمانش پیش قرابل چش میشه امروز یه چیزی رو گمان میکنه تو ذهنش میاد آه، تخمیم میزنه فردا همون میشه همونو با چشمت میبین خطا نمیکنه در تیز تیزهوشی تیز است که هرچی به ذهنش برسه همونو با چشمش میبینه خیلی رشنگی باشد پس گفت سیفت تیزبی نیست تیزبینیست است که گمانش تلیع داره تلایداره دیده یه به طوری که دلش امروز چیزی رو میبینه که دیدهش فردا او رو خواهد دید با چشمش امروز چیزی رو میبینه با چشمش بردا چیزی رو میبینه که امروز به دلش افتاده بود با چیز تیزهوشی به ذهنش رسیده بود خوب قشنگ بود خب اون مصرع دوم یرا قلبهو و یومهی ماترا غدا در واقع توضیح همون تیکه تزنیه تلیعت و عینهی است بعد این تزنیه تلیعت و عینهی در واقع اون زکاوتش رو داره توضیح میده یه او آدم بابوشیه به شکلی که گمانش تلایدار دیدشه یعنی قلبش امروز در امروز چیزی رو میبینه که فردا چشمش اون رو خواهد دید. یرا قلبو فی یومه ما ترا غذا. اون چرا که چشمش فردا میینه. این ترا فایلش میخوره به عین. قلبش امروز چیزی رو می‌بینه که چشمش فردا او رو خواهد دید. زیبا بود. عشانگ. نگاه کنید بیت بعد مسئولن ال مستسعاك بخیلهم فلو كان قرن الشمس ماعا لعوردا خیلی راحته خیلی راحت. وسول سیغه مبالغه است از واصل واصل یعنی چی؟ رسید از وسلم وسول یعنی بسیار میرسه ال مستصعبات مستصعب یعنی چیزی که خیلی صعب شمرده شده سخت مستصعبات میشه دشواریها، ها سختی ها یعنی چیزهایی که سخت و دشوار ساشت خیلی هم که میدونید دیگه سوارانش خیلی یعنی اسبان منظور سواران اینجا قرن هم کرانه شاخ گورده اینا چیزاییه که کرانه اینجا چیز خوبیه. دارم گفته میشه. و شمسه یعنی کرانه خورشید. یعنی شاخ خورشید. آورده ورده یعنی وارد آب شد. وارد چشمه شده اصلا مورد یعنی چشمه اورده یعنی وارد کرد اورده یورد و ایرادن یعنی وارد کردن پس اورده یعنی وارد کرد اوردا اون علفش اورده بوده علفش علفش باییه دل ماضی مثبت اگه جواب لو بشه لام میگیره اینجا گرفته دیگه لحه حالا نگاه کنه چی میگه میگه سیف و دوله با لشکریانش حسبانش بسیار رسید بسیار واسل شونده است وصول. بسیار واصل شونده است به سختی ها و دشواری ها. یعنی مقاصد سخت و دشوار رو با لشکریان خودش بگید بسیار شده که میرسه بهش با لشکر خود بسیار میرسد حساب مشکلات و سختی ها رو او میرسد به تمام مشکلات و سختی ها مثلا میگن اینجا رو نمیشه فرد کرد مستصبه، اصلا محال کسی بتونونه فقط اون بالاشکرش فقط. اینجا نمیشه جاده زد. محال کوه، او بالنشگرش این کار میکنه پس تمامی مشکلات رو بهشون میرسه تمام سختی ها رو بهشون میرسه زیاد هم میرسه وصول بالنشگرش، یعنی بالنشگرش همه مشکلاتو حل هم میکنه. درست ف به نهری که به جوری که پس لوکان قرن و شمسه ما ان اگر آب رو شاخ خورشید باشه کشمه آبی بر کراله خورشید باشه مثال لعورده یعنی لعورده خیله بود لشگرشی به اونجا میرسونه آورده مفهولش افته دیگه لعاورده خیلیم لشگرشو به اونجا میرسونه میگه اگر چشمه آب بر کرانه باشه بر لبه خورشید باشه رحاله میکنه لشگرشو میرسونه مثال زده با لو لو رو میگن چیه؟ فرض محال یعنی به فرض محال اگر چشمه آبی بر خورشید خورشید باشد لا خیلهو خیلی او دشگر خود را به آنجا وارد می کند. مقد از ما شجاعت سیف را با یه مبالغه خیلی بالایی تصویر کنه تو این بیت که از ما رادش بالاست. مم. پس مستعابات یعنی دشواریها، ها سختی ها استسعب طول امره یعنی این کار رو مشکل یافتن سخت یافتن مستسعب اسم مفهوله یعنی سخت یافته شده دشواری یافته شده یعنی چیزهای محال رو بگید بهشون میرسه باعث بخون لشگر خودش. ولو محال این باشه که چشمه خورشیدی در چشمه آبی در کرانه خورشید باشه او لشگر خود را در اونجا پیاده میکنه لشگر خودش رو در اونجا بگید پیاده میکن. اینا را همه رو گفت درست شد عزم سیف و دوله، شجاعت سیف و دوله کرم سیف و دوله خضوع پادشاهان در مقابل سیف و دوله. همه اینا رو گفت برای اینکه که میخواد بیاد الان وارد این داستان بشه م? که سیف و دوله با پادشاه روم جنگید و او رو شکست داد بعد داستان جنگ او رو با پادشاه روم بیان میکنه که اون پادشاه روم اسمش دیمتریوس بوده دیمتریوس دیمتریوس که ایشون بهش میگه دماستاق تو میرنید که عربها اسامی رو تعریب میکنند دوست شد اسامی رو که میاد تو زبانشون همون شکلی که هست استفاده نمیکنند بلکه اون رو به یه شکلی بگید بالا پایینش میکنند تعریبش میکنند مارک خودشون رو بهش میزنند دوست شد لغات رو میگیرن حروفش رو یه مقداری بالا پایین میکنن و انگار کلمه رو عربی سازیش میکنن تعریب بهش میگن به این شکل درستش میکنن الان اصلا هشتک رو میگه آشتاق یه چیزی هر چیزی رو میاد چراغ رو میگیرن از ما میکنن سراج درست شد؟ دیمتریوس رو میگه چیه بگید مستق داستان جنگ سیفت دوله با پادشاه روم رو درست شد بیان میکنه از این بیت یازدهم که پادشاه روم چگونه پسرش کشته شد چگونه خودش زخمی شد و چطور در مقابل سیفت دوله شکست خورد چرا؟ چون خواست پردویی کنیم؟ درست و سیف اونو سر جای خودش نشوند سیف الدوله امیر حلب بود در شام و با رومیان درگیر بود و پادشاه اونها در جنگ با سیف الدوله شکست خورد و سیف با شجاعت بسیار با او برخورد کرد به همین دلیل به همین دلیل این قصیده رو که در روز اید قربان در مورد سیف الدوله گفت متنبی به این داستانشما پس تا این بیت دهم ده در واقع مقدمه بود درست شد مقدمه بود برای اینکه وارد این قصه بشه و شجاعت صیف الدوله رو در این جنگی که با دمتریوس داشته و پادشاه روم رو سر جای خودش نشونده به نحوی که دیگه گفته غلط میکنم جنگ بکنم درست شد این مبحث بعدی با قول خودمون این قصیده است که از اینجا به بعد وارد بدنه بقول خودمون قصیده شهر میشه وصولان که تو این بیت خوندیم خبر مبتده محضوب بود دیگه مثل زکیان یعنی هو را وسول هم که گفتیم سیغه مبالغه است از بگید واصل یعنی بسیار واصل می شود ال به دشواری ها و سختی ها بسیار میرسد به تمام سختی ها و المظعابات داره یعنی همه سختی ها و مشکلات رو بسیار و بسیار به او میرسد اما باشی به خیله با سوار خود با سواران خود میرسد به تمام سختی ها و مشکلات درست شد جوری که اگر کرانه خورشید هم چشم آبی باشد او لشکر خود را به آنجا میرساند اونجا رم فط میکنه چیزی از او بگید باقی نخواهد گذارت خب تا حدی از این مبحث رو خوندیم انشاءالله ما بقی هفته آینده در خدمتتون هستیم و وارد اصل رسه خواهیم شد موفق و معید باشید تا جلسه بعد الله هفته آینده در فکمتون هستیم معفق و منصور خدا حفظتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون